كتب باشترين خاوري خواند نوي كتبو قران بانيو حكمتاكاني نوسين ده كتبي چشدي مجاور نوسيني هجار مكرياني خواند نوي عميد علي مارکردنی کردنی دلیر سلین عزیز عزیزو خوشویس لاوتن لیویت خوشحالین لبشی پنجاوسی خون نوی کتبی چشتی مجاوری هجاری مکوریانی حتی نوی خزمتی یوی فرمون لگل بن خوشبینانه جر برداوم ابرلس جرانوی به سرعت جانی خوی یستاد لوقات دعای کل دولتی روسیه ولگشتکی برداومه. جر مکریانی دانوسه لشوروی کسی کاری دولتی نکرده با بزر ندخرا برکر بلامحقوق نبود. وستای تلفن و تلویزیون و رادیو چکر نواهون ک ازاد بونو لمالان کاریان بپیداد بون جنهبون دبونه کارکری مالان. بلامدبوی و کریکاری دولت راجعش ساعت کرد. هفتیدو روز و چند سالی من یک مرخصی به حقوق و ورجن. سلماسی کلافتی و هبو ک و کفرعون حکمی دکرد. شاید لدنش جای گردی لینین دعوتی خواند کرد. مشروب هبو نان ندرا. ساعت دو عنازه هتی ندار. زورم برسيبو وتم. سلماسی تازه ندست نکه. دیمو مال ایوان نده خمو هر لویش دنم. ایویش وقتی جای خوام نیا وتم کاکا دستم لجوری کلفتکده خوام لیم رونه درم ناکا وقتی نایلم بی دادبم و اوتیل بیانی اول روزه هات ولام کاکا جمله دکه وتم خیره وقتی کره غلطی کم کرد با کلفتکم گرای و کتورت دگرد آوا لیم باقین داشو دلای حرمتی منی لبر بو تو نتهش تو هر استاد روم منیش جانا حسانه بم بابوت آشت دکم اوا اوشو ها لبغدا بلی گوادیم پیکردوه نایالم سی کاری زور گرینگ لروسیا پیکاتوا بیمه هموانی کار همو دا خوازی خوندن بو همو منالیک که ام سیشتا بیخمن مساله مسکنیش لرگه حل کردن دابو قرار وابو تا سال هزار و نوست و حفته او گیروگرفتش او نمینه چومه سری خانو کردن لا دیوارک دراو دگوم سی لا دیوار سربانی ساز لیک ادراو هر هنده بلی بله یک و دو دبو و دیان گود واهی نهومیک لزوین لیک دادنو دیبن سر نهومیک. کمن اوام ندید، خانو زور گورن، هیوای جگه سطان مالا، اسنسور هیا، تلفون بوچن مالک هیا، گاز لولکیشی کروا، دولت لصدی شتیکی کم لحقوق دبره، و بری دخوا، مالکان چکولن، لوتاق اکو اشپاس خانه اکوا تا سی وطاق هیا، بی سالون چند مال لکوریدور یک دن درگاین برانبر یکا کابراد بی همیشه درگا پیودا اگر نهوی جوری مالی ببینن که اما رنگا بو خلکی دروی خوان مال زور نخوش بی بلام لوی اگر اما دست کهوی نعمته لسرمای زور سخت دا و لگرما دا بازار و مترو و اوتیل لمرکز و گرموفینک دکرینه و روز بگشتی و مسکوی و لینینگرادی زور ترپوش نوم جلکی کی جوانیان ظر حذلیه. هر چی دستیان که ول کی جوانی خرد دکن. سینما و تئاتر مایی سرگرمی هموانیه. نخوازه بالشوی تو آتر کسیک بدومانگیش بلیتی دست که ول شنازی با بختی دکه. چو ما بالشوی تو آتر بالی پشتکوری نوتر دنبو خن نویک جار برمیانه. ظرش هرزند دست که ول تیраж هرچند بیه کتاب ظر زول بازار نمینه. شبک لهبردر کی تئاتر یک تی بكم دی چن چی کردن سلماسی نه بکرم وتی لپاشان دی کریں هاتی ندر نما بو قروم گرت هر د ب پیدا کی زور شوینان گرا بو دستینه کتبو بروجیک خلاص بو بو ب تکرائی خلکی شعر دگل خلکی خلقی, خلقی لادیا زوریان فرق حبو خالکی لدی جل شر او پیخواسی زور نهبو بلن اوې راز به خانوی دین شینکن کله درکراو له نو باغچه ده halkotun به چې یېمن زور له خانوی شړستانه ټکن خوشتر بو دموت اگر معلوم در روسیه به له خانوی لادید د کاری شړستانم ده کړ ازادي بیر رای تا کسي در برین عربیو مصر او ایرانه کس نتوانی رخنه لدولت بگری. خلقه کش زور سالا فیری بونو پیوه گوره بون. جونادن آزادی فردی هیا یان نیا. با جهیلان کرو کس او پری خوشیه. با شرطه نانو دابین ببی. من دی توما کس پیش با کرک بگری و لنیو حاولانو خلق دابله تون پی جوانه و ربا پیکوه بگررین. کهیز بعیب حساب نکره و. لا یک بهرجنی بله توم خوش دوو دعوت بکا اتر پنالی د دمی باب درم اگر نه و ب پیکنی من کارم هيا ناتونم بن بخش جګله سیاست مداران هیند کی کم ل همو زور له دنیای لاو به خبرن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 د انوت باور نا کین دیسن پیدا دکی دمغوت روژه حقی کله کی بری پیاو او انځ د انگو آی لو قص لبخشی آسایجګه جنیک پجیشکې مندالن بو پری بچنګ یا دا کړد پرسی ل عراق شتیوه هيا ومتمن خیر لویر جیمصر ما داریا گیا شینه به راست امل بهش دین او همو جایدبینی فتحی گوتی، بود روی دگل دکی، گوتم نمویلو خوه خوشی را پرینم، فتحی گوتی، یکی الو افسرانی ایرانی که لقل امرغی و رفین رابو بوی جراموه، که هاتی نماسکو، هر یکی دگل شارزاک دگر راین، شارزاکم گوتی، شتیک محیا دوگمه بعد یود لطرانو زور شویننده به، دستکاری شرویه، وعنیشان دم، برد میوه مال، پیچ یه رادوی باده دنگ نهد. له خجالت یان ماتبو باورم پی نا کی کوته کند کان غتم جربادر کوم بو بینه رادیو بو چا دوا غتم من وستا یوشتانم نمائشګی کی صنعت امریکا هاته موسکو زور کس لا اسایشګه و چون د یان زور سیرا خو امریکا د توانه دروس کاپټر کا روشی که حوال منگی دست کرد شوروی، لسر منگی آسمان نشده با دکتوری که علمانیم گوت براستی مایی شانازیه، گوتی راسته، بەڵام امبریا لجاتی اوه کرخانه که سرونجی باشیان با دروست بکردینایە. لە لمرکسیزم دا که دین هیچ جگینی پیم سیر بود که لشوروی دینه که سربخواه پیدا بود، اویش با پیروز زنین لینینه، لا شکید د نیو قبره شو شکید د مومیاي کرا او ماو بوته جګي زيارتي همو کس لزستان وحاویندا هميشه په چوب دريژاي كيلومټریک خلک به نوره زيارت راوستاوه دو دو د سنجور چا وين و دردشن قد لولاتی مسلمانان، آو اندا رئز لجوری پیوچاکن نن رعو. ک درسی روسی مدرسه من دالانم دخویند. زور فرمایشتی لینین مدهاتابر ک زور سال بو لبرم بون. پیغمبر کردو و تی روژیک چونک خانه لینین له موسکو لدرګه جزوی کندامه نوسرابو جګل مجلات 20 میلیون کتیب هدايا سالون سالونه هر کس به زمانه کتیب دخوینه تاو له سالونی تایبتی دادانیشه فیشی ناو کتیبانو فیشی ناو نوسرن کتیبان 10 بجې پیدا دکره، کارت یک بشماریک تیب دخنه بر لاخ خویانوه ک پاش مده که زور کم شتیک وک قطاری چکوالا کتیبک نیو لیور گره. پاش خوین نو قطارا که دیبات و شوینی خوی لناو انباری تایباتی ده که هرگیز مورانو شا کاریتی نکه. اگر میکرو فیلمت لکتی بوه اوه داواده داوا دا که زرابینت لسر میزکر لبرده ما ده ده. من چونه باشی فارسی و تمبشی کوردی مده لبشی کوردی ژنیکی سرسپی وقت چور شیر به سرو سیمه بخیر هنم گوتی کورد لکتیب نردن تمبلن کتیب لره ته ته دمنی بلان نینیرن ای بی خوش تنبل زور کس کتیب کوردی دنیری بلان بواسطه آشنایان لشوروی او نایدن بکتیب خانه من چند کتیبم با هینوی لماسکو با پول کریو متووو خوانکانیان با ایره نردو دزرعوه. وای دانی کتابم بناوی تو نرد. کیا دلی توش با نابی؟ گوتي دبیل سر او قصد او زرخوایی ملیبکی. من کردم. زور حزدکم بشی کردی زور دولمن بی. من نوام زینب کریم او وای. باوکم خلقی شعره کی کردستان بناوی سابلاغ. زور زمان دزانی. تاجران لویو دگل خویان د أخري لا تاتاريه دامزراو دايكي منيهينا نا بيق سيوا دربارم بكره گوتم ست زار عزر خواهيد ليداكم بمبخشا سيري خوش اوه بو بيتي سر مراكم که گوتم تنیا سي نسخي نفوتابو لوه هبو چوما سيركي موسکو، چوما سينماي پنياراما که زورم پيا سيري بو هراو جارشم ديتوا چوما موزي طبعي ناميكم بو فتحي نوسيكا مرحومي كربلاي فتح اللهم زيارت کرد تیگهی بو که منظورم اسکلیتی قدیمی گوریلا یک بوا. لسر داوی خوام علی یوفیان رگل خستم. چو ما تاشکند. ادریسی سابلاغی پیبو. پی بو. کارمندیکی شهرداریم دا گل هاد. زورگر راین نماندی توا. لمسر کده چوین کریک بزینو لغاوا لبر درک گوتم او کری آخونده کدگر راینو آخوندیک سواری کرشین بو بو. کابرا پرسی او چونت زانی؟ گوتم زوکی ملاد ناسم، بنا شکری خدا نبی، لهمو شوینان مسلمانو میشو چلک وگ برای آوال دوانانو بی اکتر نبین. تو که لینینگراد و مسکو میشو یکت بودرمند دستنده کود، لبازار تاشکند ست هزار با قوشه یک بکری با. منجل شورباو پلاو لسر لیوی جاده دان راونو هراو چاقی فروشیارو لناوتوزو غماری کامیونو بار برده مشتری ریزبون. ددگوت علاویل حل شاری بغدایا. قاوخانه هموی سکوین دوراندور هبو. با و چوار مردکی لسر سکو دادنشتن. چای سبزیان دخوارده و پیاله اکی چینی پر لعاوی کلاو هنده گلاچای بوندراوی بسره و بحال رنجی دگواره فرده کره. او ازباکی جورت ترکیه اک بو زور کمی تیده گیشتم. شوچوین اوپیرای میرالی شیری نوایی که زور جوانه که جوانه. نمائشنامو سماو گورانی کیجه اوزباکانم زور پی خوش بو بلام حرابو. سودای بزنو گاجوتو چکای احوال پرسی بو وک بازاری قباکندی. روژیدوهی که برای که شهرزای شهر لعیداره سیاحت و بناو شاریده جراین. هستم کرد که داگی نه پیره جن، میره جنی برو بند و خویده دا بینم. وتم تم برا، امی پیناوی، اما بلگه کشوروی بزر کس مجبور نکه برگین بگوارن. چوی نه سمرقند، شهرکی کنم دید زوربه گرککان خانوی خشتی با قرسواغ در او بون.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 بيشاره دایکم، اوه چوار چوار شموية ديته ارو نيازي روا نابي پیموت چون وتي او پلکاناني بو مرقد دچن 21 پلکانان اگر لا سر كوتنو دابازين هر 21 بن نیاز رواه. لم سر جمارة 21 تواوا لو سر چون کلا 21 اکا پیدنية تا سر عرض حسابيان لیت یک دچه دایکم بوي ساغ نبوا توا چوينه سر قبری تايموری لنگ گنباز یکه تابلوی که لبرد حلقند راوی بسر درگاوی لسرده گنباز دا و باقلم دا کس لخزم و ماموستای دین یکی تاجدین نجراون به هنگاو دوری گورکم پیوا شاهیدوف پرسی نیازت چیا؟ گوتم او کابرایی با آواد بو زمینی یکی دی کشب وایا اویشی داگیر بکرده و بیخستایت سر سمرقند ایستا لده هنگاو زمین دا, دا خیره لینایا چون مسیر رسدخانه شاروخ مرزا کوری تیمور قبری زنایی که روس لو نزی که بو شهیدوف با یراموه شاروخ لزانستو زناین خوشی دهد ام شوینه با استراناسان کرد ملاین گوتیان کفر و دوی دویخوین دو تیکو مکند را. ام عالم روسه آسوار ناسا لیبرو شوینکه بدوزیتاوا هاتو تا سمرخند سال لوی نشته جبوا سراغی نکردوا روژک لمحکمه شرعیده قباله یک دخواندریه توا کفلانه زوی خوراواکی تا رسد خانه دا چی او شوینه دکواله و پیدای دکاته و لسر وسیط خوشی نزیکی نجراوا، بداخوا نوی زانکم لبیر نماوا، بلام افریم بو او همو حوصله یا لرگی زانزده لو دمده کابره یکی شرولی توپنه گردال پیدا بو، بفرسی که تکلاوی روسو اوزباکی فرموی من بابایوفم زور باش لیمه جوی او رسد خانه دا یه دا قدر دا من هیچ شهیدو فیش دنک یکی لیتی نگیشت پولیک من نای مستیو زور سپاس کرد چوینا دیتینی رگستان که دو مزگوتو مدرسی فقی زمانی تیمور بوا یکیان جنکی درستی کرد و شروعی ویستو یه پاش ویران بون آوه انکاتو تا دنیا گران به ریلیا ببینن دو دا مدزگای زور جوانو برچاون لودم دا وستاو بقصه شهیدوف وسته لکشمیره و هندراوه که کاشی کاریکان سازکاته و کریکارکان فیری سنعته کپکا دستانک دنو اوزبکان ده هیا که بی بی خانم رگستانی بنیاد تا ک تیمور له هندستان گرایوه پیشکشی بکا کار توابوه با وسته گوتوه حق چنده گوتوه جریه که جوان دادمه قبولی نخرده و خانم ما چه که للا جماز بو بخاله که رشو پانو زور جوان وستاره ترسی اوه تیمور پی پیبزانه توا چو تسربانو لشقه بالانیده و فریوا کس نزانه باکوه چوا شهیدوف گوتي پیامنیری که امریکایی حاتب و سیری رگستان که بیبی خانم ناملکه که لیکرده و گوتي دیدی خانم نسراوا تو دلی بیبی خانم هر چی کردم او هر باوری بمن نکرد ویگرانی عزیز و خوشویست لیاره در حتی نکو تایی بشی پنجاوسی خون نو اکتبی چشتی میجوری هجاریم کوریانی تا بشی گیتر بختوارو شادو من بجین.